درس چهارم یا قسمت چهارم ابدال و اعلال چهار قلب الواوی و الیایی علیفا تبدیل شدن منقلب شدن و یا به علیف و یا به الف قلب می شود چه, چه زمانی یک قاعده در این رابطه توضیح می نهد الامثل رو بخونیم یک کان ابو بکرین یقول الحق اذا قاله و قاله کان مسدرش کون هست؟ قال قون هست. ولی میبینیم که تبدیل به علف شده در قاله. قاله نصره از نصر مغازیش میشه نصره از قول هم میشه قاواله ولی تبدیل به شده؟ تبدیل به علیف شده قاله و لا عنه اذا اذا الجبل ماله ماله هم اصلش میاله بوده از کجا تشخیص بیریم؟ از مزارش ولا يميل عنه إذا الجبل مالح، تفهمين مثال؟ يميلون مزارع مالح. هم ما تركدر مثال عندي يقولون ما دام وكما زش قال. دام كان أبو بكر يقول الحق إذا قاله. قاله، فاس أصلش بود قاله. أز مزارعه وما سدرش تشخيص بدي. يقولوا مالح الأصلش ما يلبوده أز مزارش تشخيص بدي كي يميله هست. يدعو للخير إذا دعا. دعا هم دعوه بوده از مزارش که یا دعوه از ترحبیل بسال اومده چهار و یرمی فی سبیل الله اذا رماه این جمله طولانی بود در چهار قسمت شاورده کان ابو بکر یقول الحق اذا قاله ابو بکر زمانی که میگفت حق را میگفت ولا یمیلو اذا اذا الجبل ماله و مائل از حق نمی شد حتی اگر کوه مائل می شد و یاد اول الخیر اذا دعا و زمانی که دعا بیکرد دعای خیر بیکرد و یار بی سفی الله در رما و در راه الله میزد زد زمانی که پرتاب میکرد خب و یار بی فی الله در رما رما هم در اسم در رمایه که تبدیل به علف شده پس واو و یا در یقولوا واو در قال واو قوله بوده در ماله یای بوده بیله بوده شده ماله در دعاء دعا بوده شده دعا در رما رمیه بوده که شده ربا چرا قاعده ای رو پاسخ میده القائده قاعده 12م کتاب اذا تحرکت و والیاء زمانی که متحرک باشند و و یا و کان ما قبلهما مفتوحا و ما قبل و و یا فتحه باشد حرکت خودشون مهمی است که مهم ما قبلشون فتحه باشد تقلبانی الفا تبدیل به الف میشوند یه قاعده مشهور هست در کتب سر و و یا متحرک ما قبل مفتوح تبدیل به الف میشوند قبله قاله معیلا ما ماله دعو دعاء دعاء دعا ربيا این ان شده است قاعده 12 كتاب النحو الواضح